تازه میخانه و مینام و نشان خواهد بود سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود بر سر تربت ما چون گذری همت خواهد که زیارتگه هرندان جهان خواهد بود برو ای ظاهد خود که زی چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود ترک آشق کش من مست برون رفتم روز تا دگر خونه که از دید روان خواهد بود چشم مندم که زی شوقتون حد سر بلهد خادم دم صبح قیامت نگران خواهد بود بخت حافظگر از این گونه مدد خواهد کرد زلف معشوقه به دست دیگران خواهد بود